انسان‌هایی که در کنار دیگران از همان ابتدای پیدایش می‌زیستند، آنگاه که دیرباز تمدن ناداشته آدمیان گذشت و این فرهنگ به عقل و دین مزین در میان آنها سر برافراشت از هر کوی و برزنی ظلمی سر باز زد این دگرباشان آرام که چون دیگران پای به جهان گشوده بودند و همتای دیگران محتاج نیازهای درونیشان بودند، مورد تمسخر و اهانت قرار گرفتند.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 محتاج عمر این دیوانگان شدند هر روز کار از این بیشترها در دیوانگی ها والا می رفت و در این مرداب حماقت و انسانیت قوتور بودند کار به خط نگاه و در آغوش کشیدن رسید و بوسه های آدمیان مستوجب به کفاره و شلاق های آتشین شد و خدا در آسمانها عرش پرزلمتش را در لرزه دید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 در هر امر آزار نرساندن و قانون پاک و والای آزادی راهگشای آدمیان خواهد بود کسی که به دیگری تجاوز می کند و حقوق آزادی او را به زشتی و بر زور خیش درآورده و به کیفر و ماندن از نظام جهان جان هاست نه عشق میان دو تن که عاشقانه یکدیگر را انتخاب کرده و از بودن با هم لذت میبرند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 از خیشتن و جامعه خیش بترسد که مبادا مبتلا به این ویروس محلک خودخانده شوند و تخت خداوند بر عرش به لرزه بیفتد تنها راه حل برای برون رفت از زشتی ها و ظلمت بیکران جهان و رسیدن به آزادی والا جهان آرمانی آرمانیست که آن همگان به باور و سرایی که ازان آنهاست عشق فرزند و برای بهتر شدنش با جان و دل تلاش کنند.